من الشیطان الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمين و صلی اللہ علیه سیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین و معصومین و لحظ اجمعين اللهم افتر راجعین و مخللین و رحمنا برحمتک یا رحمت را اصول راجع به حرمت حلق لیهیه بعد تعرض روایات و این ساخن از کردیم با مجموعی روایات و سیره در اکمالی که ادعال کده این ساخن به نظر من که خیلی واضح و سیره عملی حتی از خلقه ها و غیر خلقه ها فضلن همه لعنه این اثبات این مطلب روشنه خیلی به نظر ما جهه خوبه نظره و یک نکته رو در بحث بودشتی یاد هم رو کنم بحث کنی رو ما معتقدیم که روایت حتی ایت ضعیف هم باشه اقل معید و بقول عرب ها برای دعن سیره و تایید سیره خوبه اصلا ما روایت کلینی رو بردیم روایت حبابه والبیه گفتیم سند ضعیف اقوامون حلق الله ولو سند ضعیفه ناکه از این که کلینی اوبرده و در جب دینی و تلقیه و در شده یعنی مطلب غیر طبیلی نبوده ما تا یعنی تو ذهنیت اونها خوبه یعنی تو ذهنیت اونها جا افتاده بوده که حلق الهیه جایز نیست یعنی ذهنیت و یا تدالک حدیثی که نرحوم صدوب داره که مرسل افلله این احادیث زریعی چی که که متحرز حلق الهیه نفیلاشن نه این برشنه اون چیشنه روز حلق الهیه ایشون نه بود و اصلا بابزی و تجمع دید این معنی که در کلی نیست ایشون نه بود به قبل فرمانه که روایات زریفه اونجا هم به درد اثبات سیره خوبه یعنی اثبات یک فرهنگ میکنه به عبارت اون اگر روایات صحیح و صندت باشه ما ازنا ما تعبیر به متون دینی میکنیم اگر زریف و صندت باشه برای اثبات فرهنگ دینی خوبه ما یک فرهنگ داریم یعنی متون داریم فرهنگ اون تلقیه به قبوله یعنی برپرزم فرهنگ روایات زریف باشه برای اثبات طرحنگ و اینکه زمینه اجتماعی این بوده چون هر طرچه مثلا رواز ضعیف از اینکه کُلّی اون روایت اوورده و اعتماد کرده و اصحاب کتاب کافی پیشون بوده و اعتماد کردن مثلا حاشیه ندادن که چرا گفته قوم حلق الله ها مثلا این کار حرامیه خود این معیبی این مطلب من نمیزنم چه خلال بحثشون حافظان میگن بعد روایتی هم از اهل سنت نقل کردن درباره قوم لوط اشترات اشترات اشترات اشترات که خداوند قوم لوط رو بنا هلال کرد یکیشم همین حلقه لحیه هست. من توی روایت خودمون ندیدیم در روایات ما روایت داریم که شیست صفت از صفت قوم لوت هست اما توی ذهنم توش سابقه نماز به بحثشم کرده اما ظاهره توش حلقه لحیه نیست اما توی این روایت اهل آمونه سرانشم زهیب این گوه در کتاب جامعال سغیر سیوتی اوورده حالا یادم رفته از یکی از این کتابای غیر مشهور کنیم شما نبود که استخراف از به هر حال و این رفایتی که اهل سنت درباره قوم نود دارن واقع نظر از ما هم درباره تعبیر اون این جند بنی مرغان، الگین حلق اوله ها و از شد که بعضی از حقه های ما هم فتوا دادن که حلق الهه جزای به خاطر این مسخ چون مسخ شده انصافاً چون انصافا شد این هر دو روایت ضعیف و سنده و کبائر هم در عدهی از روایات ما محدوده و اصولا نمیخوره که حلقه دقیوزه کبائر باشه اعتباراتش هم مساعد نیست اگر کل در باب کبائر دو اساسی در بین علمای اسلام سننتا و شیعتا خصوص به شیعه نداره وجود داره اینکه تمام گناهان کبیران فرق نمی کنه که آیا خوئی از علما ما معین می تو سنیان داره یکی که نه ما قاعده به سبیره و کبیره بشیم و بگیم عرف و هم همین رو اختضا میکنه مثلا یه گناهانی هست که به اسطلاح مثل عمود فقری میمونه مثل اساس مثل به اسطلاح عمود خیمه میمونه فرسیم مثلا با مثال فرار از جنگ فرار از زهر یه دفعه انسان فرسیم مثلا یهو یک نفر مجاهد رو سیلی میزنه یه حسابیه یه دفعه مثلا فرض کنید یه دفعه خود جنگ رو فراگیر می‌کنه که مسلمان ها باهاش بخورن مثلا نساجی با در رابطه بازدن یه دفعه نساجی مثلا عمل زشت نساجی زنار رو انجام می‌ده در مقدمات لمسه لزاب بعید نیست که این بحث سریر و کبیره هم اساسی باشه یعنی ما یک محورهایی داریم در اون مثلا در محور رابطه با پدر او خوب جزء اساسی از کاریه هست اونا صغیره هستن مثلا در محور رابطه با زن ها اون عمل مثلا جزء کبیره است اما لمس و نظر و دیدن و خندیدن و این جور چیزا دیگر در دو حرام هستن اما با عنوان صغیره مضافن که آیات مبارکه هم دلالت داره همین میکنه یعنی چرشتن بو کبائر متونونه نکتر عنکم سیئات کو بناا بر تفسیر آیه بی یکم آیه لمن اونا میگن اگه فرسادیچمون جوز اون روایت بحثی تقریبا کبیره. اون روایت از روایات مورد سلیقوی بعد بعد مضافا این که ما چند تا روایت داریم، البته در روایاتی که در اداده کبیره هست، اختلاف هست، انشالله یک بحث خاصی میخواد متعرض میشیم. توی بعضی و حتی جنا هم اومده. که بعضی نشان جنا جزء کبائره، توی یک روایت اومده، اون سند ندره، وازه ضعیفیه و اصلا روایت‌بیدار نشوشن، ان شاء سر اگه اینون روایت بشه و شن روایت سالی مختصری بوده در چه معلوم نیست روایت بشه اونجا بنا اومده اما در روایت صحیح قیلان نمیاد جزو مح... کبائر نمیاد حالا من دیگه وارد بحثم چون بحث کبائر بحث خاصه خودشه و ما در بحث کبائر حلقه لهدی رو نداریم انصافا نشون روایت روایت صحیحه حلقه لهدی آمده، نه چون روز زیری کلام اشاره کرده دیگه میخوام وارد اون بحثش اینجا بشم حلقه لهدی نمی اونایی که استناد کردن اوندش هم روایت مستخه که در کتاب کافی آمده چون قومون حلقابله ها مست شدن میگه از این که مست شدن پس جزه کبایر الان کیفیت کار رو به شما حرز کردیم این روایت زعی برای اثبات و حکم کافی نیست برای فرهن خوبه رمینو بشیم روشن که اما اثبات بکنیم بینیم که مثلا این جزه بین به این روایت زعیف رو نکسی اساسی تر اون نیست که چند بار هم عذ کردیم مسخ یا مثلا عذابی که خداوند بر قوم لود فرستاده این معلوم نیست دا به خاطر ارتکبی گناه باشه این سابقه هم این که مطلب یاد مدی رف متعرض شد مثلا گفتن چون خداوند این قول می تو بالا بزرگ چپه کرد و ح پایین و بعد آسی ش پس کسی که عمل مثلا ازاج لباس انجام میده اون مثلا دیوار رو شراب بکنن از بالا قه شدن اینطور یک صحبتی این طوری هست ما این توضیحات رو ارز کردیم از مجموعه آیات این عذاب هست ثابت میشه عذاب اما این عذاب بر خصوص عمل لباته یا بر کفر اونها و جهود اونها و کارهای دیگه شون چون احتمال ظواهر آیات این عذاب بر اون مجموعه است. و مخصوص بر کفر اونها و جهود اونها بر خودی دیگه و از موزه به هم بزشن. لذا اینی که مثلا این جنب بنی مروان این مثلا خاصی مسخ شدن به خاطر همین حلقه لهیه یا مجموعه ای امور این نمیشه اثبات کرد. بذار طوری اثبات اینکه این, این مسخ هم به خاطر مثلا حلقه لهیه باشه این هم کار مشکلی. پس که ببینید باید برای اثبات کبیره بودن با خلوب و کبیره از مطلب خیلی مشكله. بله، همان بر مبنای مرحوم استاد که فرق بین کبیره و صغیره گذاشت مطلب کاملا تمام میشه. این خلاصه بحثی که تا اینجا شد مساله بگاه توضیح جاده رو شید تو خود لبز لحیه یاد کنانو به ترکیزه قسمون ترکیز میشیم اول اعف ها کلمه اعف که به اصطلاح در قرآن هم کار برده شده یا اعفون یا مثلا بکار و اعفون, اعفون از اسمان خداوند من هست و برای اعف در کتب برسا معانی متعددی که حالا ذکر شده که آیا واقعا تعدد محناس یا تعدد مصابیقه به لوازمش اخذ کردن من چون نموحای باید باید بحث لغتیشم تون طول میگیشه و خیلی شاهی خاص لغتیشم اما من منحیص المجموع انصافش اینه که انسان لفتی که مجموع کلمات اهل لغت رو در این اینجا نگاه میکنه و مجموعی اختیاراتش یه نقداری ابهام داره یه مقداری مثلا اینجور نیست که فقط یک معناه باشه لوازه باشه مثلا عرض معناه پاک کردن که چیزی باشه پاک کن عرض معناه روش مثلا عرض تل استعمال شده یعنی مثلا سبزی اون زمین و طلب اون زمین بالا آمد حالا این ممکنه لازم باشه یعنی حیوان رو اونجا درستن در وقتی حیوان نرفت آمد بالا مثلا اینجوری مثلا بگیم ولش کردن بعد موارد دیگه هم داره عفت رو به معنای بزرگ شدن گرفتن مثل این هفت الارضیشی گرفتن و افایلهیه رو هم از این گرفتن اجمال قصه بعد از تعمال در مواردی که در لغت استعمال شد در عفت احتمالاً اثبات یک جهت واحد بین این ها مشکله این ساتن این فقط باقی بحث لغت میشون بحثم تولانیش داره مراجعه کنن خیلی مشکله و این احتمال اصولاً وارده در مرحله تدوین لغت از کارم در دنیای, در دنیای عرق قبل از قرآن و قبل از اسلام تدوین لغت نشده تدوین لغت در قرن دوگمه اصلا قرن دوم تدوین لغت و از کارم اونه که تدوین لغت شروع شد ابتداعاً در کوفه و بصره شروع شد که اینا با مدینه و مکه فرق داشتن خود مدینه با مکه فرق داره هم زمانا با زمان نزول قرآن فرد داره هم مکانا با مکان نزول قرآن فرق داره و بیشتر از لهجه ها و اصطلاحات اشاعر گرفته مخصوصا به قول خودشون بادیه خارج از بادیه مرادشون در کتاب لغت یعنی ما بین کوفه و بصره. توی میخوره به همین بادیه شام و اصلاف سما و اینا اینا در این مناطبشون ادعا میکنن عرب خالص در این مناطبه این خرجی اهل بادیه تا حدود اواخر سال مثلا 4 سال 780 سنادی بعد به خروج اهل بادیه متوخف که زمان بنی عباد و امهنجان خالص بله ادشون این بود که اینجا خالصه به هر حال یا اهل کوفه می رفتن بادیه یا اهل بغداد خود سیویری خود سیویری بادیه رفت برای تعامل لغاتی این ای نکات ساریشی داره که من هم خود آمدیاب متحدث باشیم فهم میکنی توی میشه اجمالا یه ابهامی هست توی این ماده عف آیا به معنای بخششه به معنای بخششه یعنی پاک کردن گناهه یعنی اون ریشه اصلیش پاکیه ریشه اصلیش راها کردنه و اوقات ما در لغت فارسی بخواییم ریشه اون عربی رو فیدا بکنیم که بتونه گویای اون معانی باشه با مشکل برخور میکنه اینم گوهان هم هست در این کتاب لسان عرب از ابو بکرم نهار کنم معروف می که حدیثم هست برالله هم این یه اصلا کل افر ولی آفیته ولی معافات اینم نهار شده افر رو گفتن یعنی خدا پاک بکنه گناهان رو یا بخشش بخشش کمتر معنا کردن فضل معنا کرده که از اسم الاغی هم و به فضله که در دعای کومه این فضل در اصطلاح چیزی که زائد بر استحقاق باشه فضل بشینه اصطلاحشون اینه هر چیزی که داده بشه، مثلا خداوند متعال روی فضلی که داشت بشر رو اینجور خرم کرد که یک ظاهر و باطن بر از قرار داد اما حیوانات یکی بیه باطن ظاهر ندارن بیه. فصل اوله علی باطلین داره ظاهر نام اوله علی میتونه خیلی باطل چیز باشه ظاهر شیه چیز باشه گمو همه یک جور اند دیگه اغلب معلومه ظاهر باطل شیه این واقعا یک نکته است که لو ککاشتم نما تدافر تو که اگر بشر اون خصلت باطینجا فضل کنه اصل ای نداره این یک فضل یک زیادیه اصل کلمه ایه اونی که استحقاق باشه اون رو منعمل میگن الحمدلله المنعمل محفزه منع نعمت هر چیزی که سر رشد اون چیز باشه منعه نعمتی که او داده شده سر به رشدی بشه، شد گیاه یک رشد داره سنگ، حیوان، انسان هر چیزی رشدی داره اون چی که سر به اضافه بر اون مفده فضل اصطلاحاً اضافه بر اونی که سر به رشد شد خودشه اون رو اصطلاحاً فضل میگن مثلا خود افرو همه منعه فضل هم کرده. به معنای اصل، به معنای مهرم معنای کردم، پاک کردن به معنای زیادی هم خیلی من تهمانی کردم یک چیز جمع جوری که بخیر دفارسی مقابل از که دتونه تو این معانی مختلف به چرخه خیلی مشکل پیدا میشه در اونجا هم، البته خیلی لطیفه احتمال میدن اونی اصلا کل افول آفیات المعافات اصلا، اصطلاح عرفی بوده یعنی در عرب این اصطلاح رو به کار می‌بره عفو از طرف خداست الله اومنیعز عف یعنی پاک کردن گناهان مگر اینجا عفو این پاکی مثلا و معافیت هم سلامتی اونم خیلی نوع پاکیه پاکی از مرض پاکی از ویروس عافیت یعنی اینکه هیچ نوع ویروسی در بدن انسان میکروبی ویروسی مرضی چی در جسد انسان نباشه و معافات معافات اجتماعیه یعنی ما با مردم هم عرض داشته باشیم هم من مردم رو عرض بکنم هم مردم منو رو بکنه. معافات اینه اللهم اینی اصلا بکل عرض ول آفیته ول معافات. که انما سه تا مطلب میخواد یکی از خدا نسبت به خودش یکی خودش به خودش یکی مردم با خودش خدا رس... شما نستاده این کار بکن در بدن من آفیت قرار بوده در رابطه منن با مردم معافات هم من اونا رو ببخشم هم اونا منو ببخشن نه حساب قلهفاش صلحی هندسی مسالمتات میگه قالب یه رابطه حتی سلمی صلحی عربیان تلاش صلحی یک نوع مثلا رابطه مسالمت هندسی که هم ما از مردم گذشت بکنیم هم مردم از من گذشت بکنن دید خوبی نسبت به هم داشته باشیم هم اونها به ما به ششن خوبی نگاه بکنه هم من به اونها به ششن خوبی این اصلا کلا اف و بله و ولی بل رو این معناه کردیم از آیه های این ساتن کرد مثلا اف برای مهم چون میگه افت به دار یعنی پاک. اون آثارش پاک شد خب این در ریش افتاله ها تو که ریش تراشی برای روید که ریشی بتراشی چون اگه افتانه مهم باشه باید مطابق باشه, باشه ریشی بتراشد که قطعا مراد نیست، این برای که مراد نیم کردن که مراد نیم علایه حاله در همین کتاب خیلی طولانی نوشته دیگه من دیگه نمیخواد بخونم چون خیلی طول میکشه اعفاللهیه رو و فی الحدیث انهو امر صلی الله علیه و حاله امر به افاعلها هو ان یواثر یواثر شعرها و یوکسر ولا یوغس کش شواره بریده نشه. من شی شه ضاکت ها رو وزار ببینید فکر میکنم افعال جزو به اطلا تذااد نمیشته باشد تثویر نمیکنه. از این برای افن مع کردن زیادی ها دوو بازی نمی ساده جو جور نمیشه. اون ادعا میکنه که در لغت عرب هم باب افعالش به کار بوده شدن باب تفعیلش یقال افای تو او و افیت افیت این اشاره است که استعمال عربیش از دو باب آورده باب افعال به باب تفعیل اما الان من از فیتور یادم نمیاد دقیقاً بلکه از فیتور بیشتر معنایی ای که آثارش از دین برد از فیتو اثر یعنی مخدش کرد بیشتر تو من اینطور الان الان واقعاً وقتی میشین چون خیلی بحثه باب بحثه لغوی بگردین و روشن نیست که بتونیم یک نتیجه واضحی چه خوندم خیلی هم دقت کردم یک نتیجه ای که صاف و صاف بشه نه فقط من به ذهنم این طور میاد که بیایم بگیم در اعف و لها بایشون اورده بگیم شاید دو تا معنا بشه کرد یکی این که غیش و نتراشی افاین باشه اصلا کوتاه نکنی یکی این که پر بکنی توفیر و لذا وفر و لها هم آمده توفیر غیلی این با اون روایت که زاده بر فرس در ناره با اونم میسازه این تا مقدار یک قصده دیگه نظره یه پر بشه دراز که میشه خودشون ممکنه ممکنه میشهی شده آخران مراد از اعفاد دراز کردن نیست این رو کسری هم این آنون توضیح نداده. و من احتمال میدونم نیکی نمیشتن یوفت توفیر یکسر زیاد دکنه بعد گفته ولایو قصد این لایو قصدش کار خراب کرد. این نبود خیلی خوب بود ولایو قصد اگر نمی این با اون مسئله چیز هم می ساخت این راجع به کلمه اف که در این حدیث در سب شعارد لغوی و خارجی معناش واضحه لیکن ماده اف هنوز پیش من روشن نیست که این در حقیقت اصل این ماده و حقیقت این ماده چیه احتمالاً معانی متعددی باشه بعید معنای واردی و احتمالاً منشأ اتعدد هم جاهای به اصطلاح مثلا اشاره مختلف بوده فرنگای مختلف اما کلمه یه لها که در این حدیثم به کار برده شده گفته شده که این اصل کلمه از لح شجره یا لها بلمد ورقص لها پوست درخته و از خود اون مادرشم لها شجره به کار برده اینه یه نکتهی سالا بازید مخاطبه به بحث لغتی بیشه بعد از الفاظ خوب دقت بکنی با این که فعر معنی خاصی داره فعل شلاصی و از او به کار میدارد مثلا لها یعنی پوست درخت لحش شجره پوست شکن مثلا بعدها که مولدین آمدند و مثلا قول ما عجمانی شد لغت خیال کردن بهتر این به باب افعال بدارد میگن الحش شجره نصیهش رهاست این البته سماعیه این در لغت عرب هست این یک ظرافتی داره در لغت عرب که در که اهلش نیستن مخفی میشه این البته این طور نیست که دائما این طور بشه یعنی دائما بتونیم از اون ثلاثی مجردش استفاده کن مثلا خود سفر سفر خود کلمه به معنای بعد انسان از برابر زندگی میشه وقتی ثلاثی مجردش استعمال نشه سفر زیدون و نشارجلا سفر معمر گفته که در مصاوبت نیست لغویاً ثابت در لغت عرب برای اثبات این معنا یعنی کسی سفر رو انجام داد برده با موبادله سفر زیدون سنتیش رو کار گذاشت ذهن ذهنی باند میاد که وقتی یک اسمی هست ما ثلاثی نگیریم مثلا نه ها نه ها یعنی پوست درخت در خب من یه لغوی ادبی گفتم که مثلا ما الان داریم ما الان توی کتاب نکاح داریم مثلا امهر زوجت رو کتاب مهره چون مهر خب اسم مهر زوجه رو این قرار داد اونجا من چند بار بحث کردم صحیحش مهر برای زوجته نه امهر این انغاره عجبانیه صحیحش مهر زوجه رو کذا البته ما از لحاظ تصور تعجب می‌کنم چون مهر اینجاله و اون ما بیشتر خلال همین داره تو بوره قال مثلا این لها داره مثلا تصویر می‌کنن که لها این درست نیست الها درست نیست بلکه صحیحش لح، ها و بعد ها به اصطلاح له لحی... ما این راجع به اصل کلمه لحیه هم به خط لام این دو تا استخوان فک اصلی این استخوان میو فای در به اصطلاح چانه دهن میرزن این لها بشه دو تا استخوان فک تا جای اعتقاضن له که البته جمعش لحی بشه نه لهها باشه لهی بشه که جمعش هم لهیئه لهی باشه خلاص پس تسیج خدا تسیج رو گفت چه تسیج هم لحیه میه. دو تا فک رو به سال اون ما میگن که اون مویی که بر روی این لهی این درمیون من لهابسون قریزه چیست لحی مثل زرد مویی که بر لحی درمیاد اسمش لحاست که لهی باشه که جمعش لحاست. لهیه اون مویی است که بر لعد این نقطه چی که نتیجه گیری بکنیم نتیجینی که ظاهره، از زیر از نزدیک گوش مویی که بر روی این استخوان هست تا خود چانه این کلا لهیه چون یک تصوری هست که اساس این موی دو طرف لهیه نیست یکی از کسان یکی از نکاتی که افراد گفتن میشه این دو طرف بگیره که اساساً میگن یعنی لهیه نیست جلو برمیاد لهیه فقط اون موی جلوبه <تصفح> اما موی دو طرف لهیه نیست لکن با شواهد و لغوی نمی ساده چون ظاهرا لهیه برا از موی است که در لحیه البته آقای آن اینجور گرفتن من فکر می کنم به بهعث باشه یعنی چپته گرفته ن نه اینکه آیین مورد فوق مع لغبی ها اصل لحیه به مو گفته شد مثل پوست درخت بعد استخان رو به این لحی گفتن آن خیال من نه اول لحی گفتن چون لحا اششگر خود پوست درخته این مناسبه که این پوست زارین قسمتی که بر ظاهر صورت هست این لحی گفتن از لحا اششگر بعد اون استخان رو که مرکز رویش لحی بر اونه لحی گفتن برحال خیلی وارد اینجا دیگه اینجا نشین که اینا صحبت های خاص خودشو داره پس بنابر این صحبتی که اینجا ما داریم که لح لهیه مراد از لهیه کله نه اینکه مراد از لهیه خصوص ریش جلو باشه بله بعضی شون دارن که بله. من به تو لحیه من انسان و غیره و همه لحیان و درد برد هم برد بحث لحیه میشه اللحیه ابن سیده اصلا کتاب لسان عرب تقریبا میشه یک کشکویه خودش رنگ کم داره ابن منظور از پنج تا مستر اساسی گرد اول جلد اول اسم ابن سیده اللحیه اسمون یجم اومن شر ما نبته علال خده و وزده برم اگر این پرکه ابن الله یه درست مسیبه که ظاهر از دو قوینه اسمون یجم اومن شر یعنی ما در روایت داشتیم آرز قاله یع خود اومن ببینید این طب تصوری هیل از زبان عرب هست سه بخش شده. یه بخشی که مقابل گوشه این صدره که یه نظرش مال سره یه نظرش مال ریشه بعد آرز یا لب مثلا خده بعد این زغم یا چانه ایشون به که مراد از لهیه کل این ریشه هم خده هم زغم این طوریس که خصوص زغم باشه این طور نیست که خصوص زغم دلو ریش باشه اسم و نیجم آمن ما نبته. تعال خده و زغن این که تصور میشه افراد هم دار جلوبه این کفایت نمیکنه. کنه این صافر هم همینطوره این سافر هم شواهد و عرفی با این مطلبی گفته موافله لکن مشکلی که باز پیش میاد این است که ما در روایات ما که نداشتی ما در روایات ما اون چی که تنابین داره در اخذ از لحیه فقط لهیه وارد شده در روایات اهل سنت وقت رو یا اعفو اصانی نکن که جمعه اصنون اینو رو با سه نقطه با نون واغ و نون اصنون رو اصنون دستی که احتمالا اینطور باشه در اص اون بیش احتمال بز بز یا مثلا گاب کمی موهایی که دیر, دیر دهانش آویزانه این مثلا ریش بزی با قول ما ریش بزی رو اصلاح اصنون میگن احتمالا اینجور باشه این شبه اونجا میاد که نکنه اصنون خصوص ریش جلو باشه این اما اصلا وضع و اثانی در روایات ما بخار برده نشده اما تو روایت اهل سنت همه اما روایات مشهور اهل سنت همون لحاظ احفالله اون روایات مشهورشون که در صحیح بخاری و غیر روایات همون لحاظ یکی دیگه به کار برده شده که خوندیم در وقت خود بشن سبال اکن هستن سبله الان و سبل ورنه سبیه شارد لکه سبال به معنای ریش هایی که موهایی که زیر این به اصطلاح جوره یعنی آمانن اینجور گفتن این ریشی که موی که از به اصطلاح از زقن و از چانه آویزونه اون قسمت بالاش و اصمون او میگن اون زیرش که زیر چانه میشه اون رو سبال میگن یا برس باتا بکیشت دوبار و انصافشی که این هم برای ما خیلی روشن نشد اولا اصمون او خیلی درز عربی نباشه که دو کتابی که من دیدن که این معرر بدن. و اون مقدار مختصر که شوادت خاصی زبانی ما را پیدا نکردن اما فکر میکنم درز عربی باشه. اگر عربی هم باشه، عربی مدل باءد به استناد چون مهم‌ترین کلمهش عثان، اصان عثان معنی دوخار معنی دود. الان کم منعط میشه، خیلی کم مصرف این کلمه. عثون و عثان علیه حاله این یک شبهه ایجاد میکنه. وقتی چون روایت عثون هم در روایت ما نیامده و هم در روایت متون صحیح اهل سنت این هم کافی نیست برای ایجاد شبهه. این هر مطلب دوم که ریش پس ظاهرا لحی مجموعه موس نه خصوص اون موحی که جلو باشه نه یه بزنگی آرز رو بیوز لحی قرار دارید با حال از لحی کرده از آرزی کبیده رو... بله زاه نیست همچه شواهد همیتونه هم رواست ما هم شایدش همچه در... بله ولذا در رواست ما در هم کتاب ماکان من مقدم لحیه تحبیه مقدم لحیه بله بایده بگو خود اگه جلو اگه جلوه خود ب شواهد زیاده که مراد از لحیه کلیه فتصافا اختصاصی به این جور پرمه کلمه اصول و سبار چون سبار از سمی یعنی شده یعنی باز شدن مثل جاده که جلو آزمه بود امکان شده این امکان داره مراد این مثلا جلو باشه بازه استرسالش اینم راجع به کلمه لحیه و اشتغاقش بحث قرزه هم در روایات ما استرسنا شده از پر این عفض روایات احلسانه از ابو هره و از عبدالله اون عمر بی این معنی از عبدالله اون مسئول نهار شده در روایات ما هم روایات مسادر درجه توسعه ما که در اختیار ما نبود و علمای قبلی ما از امیر مؤمن هم شده ما جا و از القبضه من مقدمه لحیه فجرزو اونجا هم نهار شده در روایات ما اما در روایات ما خصوص این لحیه قبضه رو به مقدمه لحیه هم داریم. که سوال بر از طرفه میگه میشه گیره از مقدم نمی شه گیره برای واسه مازاد در قبضه تنان پس تو روایات ما این زائد بر قبضه خصوص جره می آمده اما تو روایت ها عموما مقید نشده تو روایت عامه درکین کان و الزائل یه روایت هم آمه در کتاب شمان ترمذی که فقط در اونجا آمده که کان رسول الله یاخذ منه یا طولن و ارزن اونم داره اما تاکید به قبضه نشده و در مجموعه روایت وقت مشکلی که در بین کلمات متأخرین اصحاب ما مثل سید مثل مرحوم سید دامان میردامان در شاراهنجر نشاجه که چه نبود نشو مزافرون قرار اون عبادیشه مراجعه کن ایشون چی چند معنا کرده و مرحوم فیض در دروافی معانی احتمالاتی در این قبضه دادن که بیشتر این مفاهیم مورد قبضه از زیر لفظ انسان قبضه بگیره زائدش یا نه قبضه از زیر چانه ما باشیم و طبق قاعده طبق قاعده ظاهرش استثبت از لحیه اگر لحیه مطلق این مو از همون زیر لده ظاهرش که اگر ما باشیم و ظاهر اینطور و لیکن چون اصلا احتمال دیگری هم داره که شاید مثلا از زیر لد مثل وجب که پازی میکنیم بگیر اصلا ظاهر از قبضه طولن و ارزن، احتمال این هم داره اون که اهل سنت دارن احتمالش طولن و ارزن نه فقط طولن تو طول روایات ما طولن آمده ولی احتمال داره که دقت بکنیم مثلا این دست و زیر از موهای زیر لب میگیرن و عرضه میاد تا آرزه تا انجام بیاد یعنی مراد از قبضه خصوص طول نباشه شاید در اصلش این بوده اینم که نمشکان عبدالله مسعود جو و مسعودی و سقه ها با این میخوره این دو طرف رو یک اندازه کوتاه میکرده اینطور نیست که آرزه یک جور جروع یک جور و این هم احتمال داده میشه که مراد این باشه اما چون تو روایات ما تصریح شده ما به خاطر تصریح روایات و الا اگر ما بودیم با اون محن اون این طور بود وقتی این پس نتیجهش این میشه که ما جاو از مخدم اللحی جاوازالقبزه ظاهرا از جایی که صدق لحیه می ظاهرا صدق لحیه از لب دخونه زیر لب ظاهرش این نه اینکه خصوص آخره شانه ظاهرا مقدار قبضه اعتبار شوید و ما روایت مازاد انر قبضه فاو فنار انر قبضه از کردیم به ذهن قبیه ما روایت معلوم نخونه که مصرح شده به اسمش ایکی روایت هم هست که تصریح به اسمش احتمال به اسم معلوم نخونه نشده. اثبات این مسئله الان مشکل، چون واقعا روی سند نمیشه باشه اثبات کرد داریم ببینیم بحث راجع بحث لهیو که از این بحث خارج بشیم و بعد به بحث رشوه بحث اثبات شلون درجه استحباب داره اثبات و حرمت که بگیم کل داره حرام بسیار مشه میشه واسه همین ضعیفه اثبات این راجع به مجموعه روایت لهیو که خیلی هم طولانی شد در در رشوه بحث رشوه ارز کردیم مرموم ششت نوع چهارم محارم مقاصر محرمده رو چیزهای قرار که خودش بی نفس حرامن در طبق مسائل این مسئله هشتومش به ترتیب حروف رشنه هست البته گفته شده سه جور قراعت شده رشن و رشن و به مسلسفن دستا با سه تا حرکت قراعت شده احتمالا لحجه باشه احتمالا و که احتمالت بود و فی جامعه المقاصد و المساله انه علا تحریمها اجماع المسلمین لعن الله الراشی المرتشی و رائش بین ما، روایات و اجماع مسلمین هست برای این که رشبه خب این اجماع بلا اشخال هم سابقه دیانت الهی داره کلن در عبیان الهیه و هم در خود و قرآن اساس داره آیه معروفیهی در قرآن بشتم از سک شده همون آیه لا تأکل و اموالکن بینکن گلباته و توزنو به ها الالحکام این من کلیه ای کار این آیه رو به عنوان به اصطلاح آیه رشوه اینه که به قول ایشون جدال علیه کتابشون آیه کتاب رو اصناب یکیش اینه یکیش هم مجموعه چند تا آیه که در این صحت زرکه شده اکالون لسحت نه نه رویان رشیه که رویان رشیه نه روایاتی داریم که رشیه نه صحت در تفسیر صحت رشیه هم واقع شده این هم به اصطلاح سه ایتا آیاتی که در اینجا واقعی شده ناجب قرمت رشیم روایات هم که اله ماشاءالله حالا از آیاتون بارده که روایات هم اله ماشاءالله دعاوی اجماع هم اجمالا بین مسلمین جای بحثش نگذاشته اینجای بحث نیست هم در آیات یک لطافتی هست خوب دقت بکنیم در روایات من اول روایات اشاره میکنم تون واضح بحثی مخبت بشین روایاتی داره بله ایشون داره مثلا مرحوم شیخ در مکاسه داره سنه المستفیزه انها ها کفرون به الله العظیم اوشه کن این که که در روایات ما هم داره این مطلب رو هم در روایات آمه از حده نعقی شده مثلا در روایات ما این طور داره و رشی که اینا سخته بله و سمن المیتسه سختن فهم من رشاق الحف فهوال کفر بالله العظیم که این در رباطه اهل سنت هم آمده این چون اصل قرآنه داره من توضیح بدن در عده از روایات ما رشی جز سخته یالا این می این من اول تنهید ذهنی مخام بکنم خدمتون که بعد واضع بحث بشین در بعض از روایات ما فهوال کفر بالله العظیم این صرف فندیش چیه؟ این صرف فندیش اینه که در بعضی از روایات ما گفته شده که همون رشه صحبه اما در این استدلال از زمان صحابه بوده اختصاص به ما هم نداره قده از صحابه هم همینطور گفتن این چون ما دست آیاتو اونا آمدن گفتن که رشوه داخل در تدلودها حکام نمیشه اون تدلودها علالحکام حرام یا اکامل صحب شامل اون نمیشه اصلا رشوه نبا توی اکانده سه دنبال اون دارید توی رشوه رو باید و من لم یهکم به ما و من لم یهکم به ما انزالله فاولایی فا که همول کافرون ناظر به اون آیت اشتباه نزید گفتن اگر پول دادید به قاضی که خلاف حکم الهی انجام بده و من لم یهکم به ما انزالله فاولایی کافرون این اصلا کفره این لزوق دقت کنید در روایات ما هر دو آمده این دو تا مبناست این اشتباه نشه که این به این باورم تو یک مبنا ریشه جزء احکام ده سوت که مثلا علمای یهود سوت میگرفتن پول میگرفتن احکام اجازه ی حرمون دین الله یعنی یا هارون ما الله اینا تبدیل دین میکردن در بعضی از روایات ما این آمده که ان شاء می خورم. ما هم داریم در بعضی از روایات ما خوب دقت بکنید این روایات ما هم نیست این فقط روایات این که الا خیال بکنید ما باشه روایات که مثلا ما خیال بکنیم بله مثلا در کتاب درر المنثور علیه سئل عن الصوت فقال الرشا ثقيله في الحكم شيء درو فقال لذلك کفر این اصلا کفره لذا در همین درون منصور داره باز از ابن عباس سوئل قال فقال ارشا فقیل فلحک قال لالکر کفر فمقره من لم یهکم به ما انزلالله فا اولای که همون کافرون باز از عبدالله مسعود داره من شفع لرجل لیت فعن هم مظلمته او یرد دهلی حقن که این خیلی نکاتر پنی داره که هیچ بعد با توضیح بده. فأهدى له هديهًا فقبلها يعني یعنی کسی در این گرفتاری بود یه کسی تقاضا کرد اون گرفتاری برکنار کرد بعد به شدیه داد فدارک صد صد سازه اینه یه <تصفيق> هدیه به شاه کرد صد فقیل یا ابوالدرمان کنیه کنی الله بن مسعود یاد عبد الله اننا كنا نعدو صد الرشوهت الحكم ما شد یعنی رشوه قال عبدالله ظاله کل کفر و من لم یه به ما انظر الله پا ادائه که همون کافرون یواشاش شد که راجع به رشه در خود دو برس بوده یکی اینکه که صحف باشه یکی که کفر باشه این زمینه برس پس فرده ایشالله باید برس باشه و